ارز سلام و ادب و احترام خدمت دوستان جان و عزیزان و همراهان قصه های فولکلور ارامنه فرید حامد هستم و با یک قصه دیگه از مجموع قصه های فولکلور ارامنه در خدمت شمام این داستان جوانی که حکمران را دزدی جوانی به نام چیکو برخلاف همه ی جوانهای هم نسلش در هیچ کاری مهارت نداشت جز دزدی. اون یه روز اموی خودش رو وادار کرد که همراه اون به دزدی میوه بره وارد باغ همسایه شدن و در حینی که امو از درخت هولو بالا رفته بود چیکو لباسای اموش رو جوری دزدید که خود امو هم متوجه نشد خبر های چیکو به گوش فرمانروای همسایه رسید و همهگی فرمانروای اون سرزمین و به خاطر حکمرانی بر شهری که دزدی مثل چیکو تو اون زندگی میکنه ملامت میکردند و یکی از اونا به تحنه گفت چطور اجازه میدید می همچین شخصی تو سرزمین شما زندگی کنه شما حتی یه دزد ساده رو هم نمیتونین دستگیر کنین؟ این که واقعا مایه آبر و ریزیه حاکم هرچی از دستش پر انجام داد ولی موفق نشد این دزد نابکار رو دستگیر کنه و در نهایت همه جا جار زد که اگر این دزد خودش رو معرفی کنه من اجازه میدم با دخترم ازدواج کنه چیکو هم وقتی اینو شنید رفت و خودش رو معرفی کرد و گفت قربان من همون کسی هستم که دنبالش میگردید و الان اومدم تا با دختر شما ازدواج کنم حاکم طبق قولی که داده بود دخترش و به عقد چیکو در آورد و چیکو هم به سر خوب و سر براهی شد و دیگه دست به دوزدی نمیزد و زندگی راحتی رو شروع کرد یه روز حاکم به چیکو گفت حالا که با دختر من ازدواج کردی میخوام به سرزمین همسایه بری و یه چیزی برام بدزدی. چیکو گفت حتما اطاعت میکنم اما مایلین چیو بدوزدم؟ دوست دارین خود فرمان رو بدوزدم؟ حاکم گفت بله البته همینطوره چیکو روز بعد یه صندوق چوبی بزرگ ساخت و پوست بزغالی رو با چند تا زنگوله توی اون گذاشت بعد صندوق رو پشت شطوری گذاشت و خودش هم روی صندوق سوار شد و مستقیم به طرف شهری رفت که فرمان روای اون یه روزی پدرزنش رو مسخره کرده بود اواخر همون شب چیکو به قصر حاکم رفت و آغروم و بی سر و صدا داخل قصر شد بعد پوست بزغاله رو پوشید و به اتاق خواب حاکم رفت و بالای سر حاکم که در خواب بود ایستاد و خودشو به شدت تکون داد ها که به پوست و بزغاله وصل بود صدا کردند و سلطان از خواب بیدار شد و با تعجب گفت یا خدای بزرگ چیکو گفت ای فرمان روا ساعت مرگ تو فرا رسیده اسرائیل منو فرستاده تا جون تو رو بگیرم حاکم با التماس گفت پس خواهش میکنم اجازه بده اقل یک روز دیگه زندگی کنم تا بتونم امور سرزمین خودم رو سر و سامونی بدم چیکو هم قبول کرد و یک روز به حاکم مهلت داد حاکم نماز خوند و وصیت کرد و ترتیب همه کارا رو داد و شب دوباره وارد خوابگاه خودش شد و خوابی چیکو یه بار دیگه پوست رو تنش کرد و وارد اتاق شد و مثل دفعه اول خودش رو تکون داد و حاکم با ترس و لرز بیدار شد و گفت ای خداوند بزرگ چیکو گفت دیگه وقتت تموم شد عجله کن که اسرائیل خیلی عصبانی شده بیا بیا بریم تو این صندوقچه تا تو رو با خودم ببرم حاکم بیچاره که فکر میکرد چیکو فرستاده ازرائیله اطاعت کرد و رفت توی صندوق چیکو هم صندوقو دوباره پشت شطور بست و خودش هم سوار شد و راهی شهرش شد در طول راه به حاکم که توی صندوق گیر افتاده بود گفت ای حاکم بدون که وقتی تو رو به حضور اسرائیل ببرم باید هر چی میگم انجام بدی وگرنه نه در آوتش جهنم خواهی سوخت حاکم من از توی صندوق با ترس و لرز گفت بسیار خوب اطاعت میکنم همین که به شهر رسیدن چیکو مستقیما به قصر حاکم یعنی پدرزن خودش رفت و تمام بزرگان شهر رو توی تالار جمع کرد چیکو صندوق رو وارد تالار کرد و با صدای بلند گفت ای حاکم اکنون مانند سگ پارس کن تا جناب اسرائیل صدای او او تو رو بشنوه در همین حال از داخل صندوق صدای او او سک شنیده شد چیکو بعدش گفت خب حالا ار کن و حاکم بیچاره هم اداعت کرد و از خودش صدای اولاغ در آورد و چیکو گفت خب بسه حالا زوزه بکش حاکم از داخل جبه صدای ای از خودش در آورد و خلاصه حاکم وقت برگشته زوزه کشید مثل مرغ قد قد کرد مثل اسب شیهه کشید تا اینکه چیکو در صندوق باز کرد و حاکم وقت برگشتر از اون بیرون آورد حاکم وقتی چشمش به فرمان روای سرزمین همسایه یعنی همون کسی که یه روزی مسخرش کرده بود افتاد از فرد خجالت دوباره چپید تو صندوق پدر زن چیکو گفت بلند شو بلند شو بدون که دیگه نباید کسی رو مسخره کنی چون تو به من تنه میزدی که من نمیتونم یه دزد رو توی شهرم دستگیر کنم در حالی که خود تو رو از تو شهر خونت دزدید و آورد اینجا فرمان کشور بیگانه سرش سرشو پایین انداخت و توبه کرد که دیگه کسی رو مسخره نکنه و خیلی خوشحال بود که هنوز نمرده و زنده است خب عزیزان من این داستان هم به پایان رسید این بود نتیجه تمسخر و تنه زدن به دیگران هر کی این کارو بکنه یه روزی خودش مورد تنه و تمسخر و سرزنش دیگرون قرار میگیره امیدوارم از شنیدن این قسل لذت برده باشید و همه شما رو تا دیگه و داستان دیگه خدای مهربان می سپارم روز روزگارتون به